میخوام براتون یه مقدار اممیقتر رو در روی تلقین ها صحبت کنم تا بدونید دقیقا موضوع تلقین‌ها ها چی هست و اهمیتش چیه و چقدر ساده میتونید توی زندگی روزمره‌تون در طی روز از تلقین ها استفاده کنید. ببینید تلقین ها اول از همه چیزی که شما هر روز دارید هزاران بار یک سری جملات خاص و تکراری رو توی ذهنتون استفاده میکنید که دقیقا همین تلقین‌ها هستن یعنی شما دارید دهها هزار تلقین و به شکل افکاری که سری میان به و میرن توی زنتون عبور میدید و حواستون به اینها نیست و دقت ندارید که من الان این جمله رو هزار بار دیگه روز تکرار کردم چون دارن اتوماتیک انجام میشن و برای اینکه شما بتونید اون تلقین هایی که خودتون دوست دارید و برای مفید هست رو وارد ذهنتون کنید باید این کار رو هوشیارانه تصمیم بگیرید و انجام بدید مثلا ممکنه شما بگید که من میخوام یه ای رو در رابطه با اینکه من سلامت هستم مثلا یا اینکه جمله در رابطه با اینکه من رابطه خیلی دوست دارم من رابطه خوبی دارم هر ای میتونه باشه ممکن این باشه که به فرض بگید من زندگیمو دوست دارم من ظاهر خودم دوست دارم آدم اعتماد من اعتماد به نفس دارم و موضوع مهم حین انتخاب این جملات اینه که من دعوت میکنم این کار کنید قبل از اینکه یه جمله رو پیدا کنید و بخواید اون تکرار کنید دقت کنید که آیا اون نوع بیان از اون جمله به شما حس خوبی میده یا حس بد مثلا ممکنه برای تلقی میاد که برای تلقیم بیاد به اینکه من زیباترین فرد جهان هستم بعد میبینید که خب خیلی این بار درشتیه یعنی خیلی مقاومت درشتیه ایجاد میکنه که یکی بیاد به خوش هزار من زیبا ترین فرز هستم چون میدونید مقاومت زیادی هست تو این جمله یعنی شبه خودتون اولین کسی باشید که بابا دروغ نگو کلی آدم خوشیلتر از تو هست به فرز اما نکتهی که, نکته دیگهی که میخوام خدمتون بگم اینه که به هر شکلی آمادگی رو داشته باشید که یه ذره مقاومت در ابتدای کار وجود داشته باشید یا تا حجم زیادی از مقاومت یعنی از درون وقتی میخواد یه تلقین جدید وارد کنید چواس خودتون باورش نداشته باشید لزوم و نگران نشید باید این تلقین تکرار شه یه ذره زورکی اینو تکرار کنید و نمیگم حس زور داشته باشید چون چیزی که آدم واقعا زور کنه معمولا چیزی که دروغه انگار خودتون دارید قبل از هر میگید خب این زور من زورکی یه چیزی رو به دروغ به خودم تحمیل کنم که این بدیهی جواب بدتری میده به صورت کلی به این دقت کنید که آیا میتونید جمله رو پیدا کنید که براتون حس یعنی براتون قابل پذیرش تره مثلا ممکنه به جای اینکه بگید من زیباترین فرجان هستم ممکنه یه چیزی رو بگید که اصلا اخیرن هم رخ داده مثلا ممکنه بگید فلانی به من گفت که چه میدونم این لباس جدید خیلی بهت میاد و تمرکزتون رو این ببرید دقت کنید تلقین لزوما جمله نیست که 200 برای جمله رو بگید ممکن یه حس باشه یه حسی که شما دارید وارد خودتون می‌کنید و به اون توجه می‌کنید و اونو دائم تکرار می‌کنید هی تکرار می‌کنید هی تکرار می‌کنید و به شک جملات تلقینی بهتر است کوتاه باشن و برای لحظه حال باشن نه اینکه من در آینده به فلان پول خواهم رسید و مهمترین نکته اینه که چیزی رو بگید که خوب میتونید تستش کنید و کاملا اون رو باش ارتباط برقرار میکنید ممکنه مثلا یه تجربه داشته باشید یه اتفاقی رخ داده باشه مثلا یه کسی هم از شما تعریف کرده باشه یه چیزی شبیه این یه کار خوبی کرده باشید یه جایزه‌ای برده باشید نمیدونم هر چیزی میتونه باشه یه تشویقی شده باشید تلقین های که انتخاب میکنید رو دقیقاً جوری انتخاب کنید که براتون قابل حس کردن باشن و این تلقین ها میتونه برای دیگران هم انجام بشه یعنی شما ممکن توی ارتباط با دیگران وقتی میخواید به کسی مثلا اعتماد به نفس بدید یا مشکلی داره میخواید یه جورایی به اون کمکی کنید شما میتونید توی زمانهای مختلف اون جمله رو اون جمله خاص رو یا که میتونه کاملا هم تکراری باشه یا اینکه به شکل‌های مختلفی بیان شه به زبان‌های مختلف با ساختارهای کلمه مختلفی بیان بشه توی زمان مختلف اگه این رو به اون طرف القا کنید و بگید اون موقع هست که این تکرار اثر خودش رو میذاره و اون فرد واقعیت که توش زندگی میکنه عوض میشه